ارفان متعلق به همه انسان هاست ها و این عرفان متکی بر رحمانیت عام الهی است و رحمانیت عام الهی بلا استثنا شامل حال همه انسان ها میشه و هیچ ارتباطی به پاکی ناپاکی گناهکاری بیگناهی ملیت مذهب و این چیزها در این مورد نیست عشق یکسان ناز درویش و توانگر میکشد این ترازو سنگ و گوهر را برابر میکشد لذا در عمل شما میبینید که این پایه این پایه اشتراکی و فکری همه انسان هاست بحث رحمانیت عام الهی لذا همه میتونن ازش استفاده بکنن عمل اینو نشون میده بنابراین چیزی به عنوان را اینجا مفهوم نداره و همه انسان ها ریشه اشتراکی فکری دارن مثلا در همه جوامع بحث اخلاق ثباب کنو بحث شعور الهی همونطور که توضیح دادم اینا اشتراکه و توی به این اشتراک ما میتونیم به همدیگه نزدیک بشیم اون بخشی که ما با هم تفاوت داریم روبنای خواسته یه زیربنای داریم یه روبنای داریم بنای اشتراکی همه انسان ها چیه؟ خوشبودی حاکم بر جهان هستی و بعد هم دو میم اشتراک اشتراک میم به رو بنام رو یک بخشش دوباره اشتراکی هست یک بخشش خاصه که هر ملتی برای خودش مراسم خاصی داره اعتقادات خاصی داره مناسی خاصی داره ولی در بخش آم همه ی انسان ها میتونن به هم نزدیک بشن و به خداشناسی شناسی عملی نائل بشن. و این موضوع در واقع کمک میکنه به خداشناسی عملی یعنی در عمل کسی شعور الهی رو مورد تجربه قرار بده و از روی این شعور پی به خودش ببره حالا دیگه بعد از اون خب روبناشون هر کسی به خودش مربوط هست چون انسان این زیربنه رو بهش توجه نکرده دچار اختلاف نظرات شدیدی شده جنگ هفتاد و دو ملت همه را اوزبنه چون ندیدن تحقیقت ره افسانه زدن و در واقع اگر انسان متوجه می شد که پای اشتراکی فکرش با همدیگه یکی است شاید خیلی از اختلاف نظرها، جنگها، نمیدونم تقابلها در طول تاریخ اتفاق نمید در ابتدا ما شور الهی رو به طور علمی ثابت میکنیم و چونکه عمده افرادی که استفاده میکنند از این مسائل مسلمان هستند و عمدتا شیه هستند ما استنادات این بخش رو در اختیارشون قرار میدیم تعداد قابل توجهی از افرادی که دور دیدن تفکرات مادیالیستی داشتن اصلا تصور این که هوشمندی و جان هستی حاکم باشه و اونم صاحبی داشته باشه اصلا این تصورات رو نداشتن و صرفا با مشاهده سری کارهای عملی اومدن جلو و خودشون تست کردن و پی به وجود این هوشمندی بردن و امروز اعتقاد کامل دارند که این مسئله وجود کسانی که به طور کارشناسانه عرفان رو دنبال کردن و با نوکت نظرهای مختلف اون آشنایی کامل دارن و قابلیت انتباق مفاهیم رو دارن اینها در واقع میتونن به صلاح بنوان کارشناس روی مسائل و انتباه اونها با عرفان ایران کارهای لازمه را انجام بدن که از کردم بخشش انجام شده و کماکان این کار در حال انجام هست